صفحه 55 بخش ششم افسون شاه پریان شاه پریان بر فراز ایوان بلند برج تابناکش ایستاده بود هنوز صدای هزارگامش در پله‌ها تنین انداز بود دستش را بلند کرده بود تا افسونی را بر زبان آورد که میبایست دخترش را در سرزمین پریان نگاه می‌داشت و دم دیده بود که دخترش از صد مهالود گذشت صدی که از طرف زمین با شفق نورانی شده است و در سمت سرزمین پریان دودالود و خشمگین و کدر است آنگاه سرش را پایین انداخت و ریشش به شنل پوست خزی رسید که بر روی ردای مسیرنگش پوشیده بود دلسوخته و خاموش آنجا ماند و در همین هنگام زمان همچون همیشه به تندی بردشت هایی که می شناسیم می شاه پریان با لباس آبی و ریش و موی سپید بر فراز برج نقره‌ای ایستاده بود و به دخترش میاندیشید که در چنگ سالهای بی‌رحم ما گرفتار بود زیرا که او خردش از مرزهای سرزمین پریان گذشته، دشتهای ناهموار ما را لمس کرده بود. خشونت جهان مادی و قوای زمان ما را می شناخت. حتی همان دم که آنجا ایستاده بود می دانست سالهای دشمن زیبایی و هزاران خشونت روح آزار دخترش را در میان گرفتند و روزهای بازمانده برای لیرازل در نظرش بسیار مقدس می نمود. زیرا خودش بر فراز آزار و ویرانگی زمان میزیست این روزها برایش درست همانند عمر گل سرخی بود که احمقی آن را چیده و در خیابان انداخته بود میدانست اینک نفرین جهان میرا بر فراز سر دخترش آویخته است به نظرش رسید که دخترش به زودی همانند همه میرایان خواهد مرد و در میان سخرهای روسی سرزمینی به خاک سپرده خواهد شد که سرزمین پریان را به سخره می و گنجهای افسانهایش را پشیزی به شمار نمیآورد و اگر او فرمانروای آن سرزمین جادوین نبود که آرامش ابدیش را از آرامش خود او گرفته بود؟ از اندیشیدن به گوری در یک سخرزار که بنابود آن مالک زیبایی ابدی را در خود گیرد تلخ میگریست. اندیشید ممکن است لی رازل پس از مرگ به پردیسی فراتر از دانش او برود گونه ای بهشت که کتابها در دشت که میشناسیم، از آن می حتی این را هم شنیده بود و دخترش را بر تپه پوشیده از درختان سیب در زیر شکوفه های بهاری تصور کرد که های زرین و روشنی در آنجا میدرخشید که سرزمین پریان را جادو کرده بودند با تمام خرد جادوینش به طور مبهم شکوهی را دید که تنها راستگاران میبینند دخترش را همان گونه که میدانست خواهد شد بر فراز آن تپه های بهشتی دید که با بازوان گشاده به سوی چکادهای آبی روشن سرزمین پریان گشوده بود و هیچ یک از رستگاران به اشتیاق او توجهی نداشتند و سپس هرچند پادشاه سرزمینی بود که آرامش ابدیش را از او داشت گریست و سراسر سرزمین پریان، لرزید همچون لرزش سطح آب آن دم که جسمی مادی با آن برخورد می کند. سپس سرش را برگرداند و ایوان را ترک کرد و با شتاب از پله های برنجی پایین آمد جرینگ جرینگ کنان از درهای آجی پایین برج گذشت به اتاق تخت پادشاهی رفت که تنها ترانه ها می توانند از آن بگویند در آنجا از درون صندوقی یک پوست آهو و پری از بالی افثانهی برداشت و در جوهری غیر زمینی فرو کرد و بر روی پوست آهو افسونی نوشت. سپس دو انگشتش را بلند کرد و با جادوی کوچکی نگهبانش را فراخواند و هیچ نگهبانی نیامد. گفته که بر سرزمین پریان زمان نمی گذشت اما رخ دادن رویدادها خود تظاهری از زمان است و هیچ رویدادی نمی تواند بدون گذر زمان رخ دهد. در سرزمین پریان هم به همین گونه است. در آن زیبایی آرام گرفته در آن هوای شیرین هیچ چیز نمی جنبد و محو نمی شود و نمی میرد. هیچ چیز شادی را در حرکت یادگرگونی یا چیز تازه نمی جوید بلکه خلس اش را در تعمق همیشگی در زیبایی می یابد که همواره بوده است و همیشه به همان شدت نخستین بار که با افسون و ترانه آفریده شد بر فراز آن سبززارهای افسون شده میدرخشد اما اگر نیروی اندیشه شاه دانا برای دیدار با چیز تازه‌ای بیدار میشد، آنگاه نیرویی که آرامش خود را بر سرزمین پریان گسترده بود و زمان را نگاه داشته بود دمی آن آرامش را بر هم میزد و زمان برای دمی کوتاه سرزمین پریان را تکان میداد. در درون برکه‌ای که در آن ماهی بزرگی خواب می بیند جلبک های سبز در خوابند. و رنگ های سنگین ژرف خفتند، شیعی ناشناخته بیاندازید، ماهی بزرگ می جنبد. جلبکهای سبز میلرزند. نور بیدار می شبد. هزاران موجود با حرکت آهسته و دگرگونی آشنا میشوند. و دمی بعد، برکه باز آرام می شود، هنگامی که آلوریک از مرز شفق و از میان جنگل جادوین گذشت، چون این شد، شاه آزرد و به جنبش درآمد و سراسر سرزمین پریان لرزید. هنگامی که شاه دید نگهبانی نیامد به درون جنگلی که میدانست دانست آزرده است و به توده های جرف درختان نگریست که هنوز از آمدن آلوریک می لرزیدند. با جادو از میان دیوارهای نقره‌ای کاخش به جرفهای جنگل نگریست و چهار نگهبان سرحشورش را دید که زخم خورده برخاک افتاده اند و خون پریانه از درزهای جوشنهاشان جاری است و به یاد جادوی جوانی افتاد که پیش از غلبه بر زمان با افسون تازه بر بزرگترین نگهبان خوانده بود از میان شکوه و درخشش یکی از ورودی های تابان کاخ و از روی سبززار درخشان گذشت و به سراغ نگهبان برخاک افتادهاش افتاده اش رفت و درختان را دید که هنوز آزرده شاه گفت در اینجا جادو بوده است و سپس هرچند تنها سه افسون داشت که قادر به انجام چنین کاری بودند و هرچند تنها یک بار میشد هر یک از این سه افسون را خواند و یکی از آنها همکنون برای بازگرداندن دخترش به خانه بر پوی پوست آهو نوشته شده بود دومین افسون از جادوی ترین افسونهایش را بر روی صلحشور بزرگتری که مدتها پیش جادو شده بود فرو خواند. و در سکوتی که به دنبال واپس این های افسون آمد چاک های جوشن محتابی به هم آمدند و خون غلیز تیره از میان رفت و سلحشور زنده شد و برپا خواست و اکنون شاه پریان تنها یک افزون داشت که از هر جادویی که می نیرومندتر نیرومند تر بود سه سلحشور دیگر بیروح و مرده افتاده بودند و جادوی آنها به اندیشه اربابشان بازگشت شاه پریان به کاخش برگشت و آخرین نگهبانش را فرستاد تا یکی از جنها را برایش بیاورد جنهای پوست قهوهی و قد کوتاه در سرزمین پریان کمی بعد صدای پا در اتاق تخت پادشاهی که تنها در ترانه ها می توان از آن گفت پیچید و جنی پا به در کنار تخت ظاهر شد و در برابر فرمان روایش ایستاد شاه پوست آهو را با افسون نوشته شده بر رویش به او داد و گفت بشه تاب و از مرز بگذر تا به دشتهایی برسی که هیچ کس در اینجا نمیشناسد. شاه دخت لیرازل را که به سکونتگاه انسانها رفته است پیدا کن و این افسون را به او بده تا بخاند. و از همان دم جن شتافت و خیلی زود با جهش های بلندش به سرحد شفق رسید از آن پس دیگر چیزی در سرزمین پریان نجم بید و بر روی آن تخت باش که تنها در ترانه ها می توان از آن گفت پادشاه پیر بی حرکت نشسته بود و خاموش سوگواری می کرد سفر به دنیای پر رمز و راز ها